بشیسه جگه اماجهه فروید بسی ام تکلاویه دکاد بطایبت که تک بسی عرضوی جیان و عرضوی مرگ دکاد. بطایبت ام اجلن خوشی سادی و ماسوشی ده دبینه توا. سادیه تو ماسوشی و, ما و خواردنی مردو توپیو که همو امانه لادانن امانه تنها لادانکنی لروی سلوکی بلکو ام لادانانه گزارج لی لادانکی بناراتی دکن که اویش تکلاو کردنی جیان و مر دتوانین کسایتی بیوفیلی لرگای کاملک سیفته و بناسینه و کسی که جیانی خوش بوید حوال دادد لهمو بوار جورا جورکانی جیانده روسی گشه سندنو جیان کنده بوارکانده انجام بگیند او حوالی بنیاد نندددد او دیوید بگرد و آرزوی بینی نیشتی نویده کاد هر وحا حزده کاد جیانکی سرکشیانه بجین نک جیانکی نک جیان او کوی گشتی دبینید نک بشب چ هر وها او حز دکات که هیمنو آرامبی تو هلسو کودکانی خوشویستی و اقل بسری دا ظال بیت. نک هیزو لناو بردنی شتکان، هر وها دجی شوازی بارو بردنی بیروکراتیا. چون کلی او خلکی بریتینین لماده و شک، لکو تایج دا او چجل جیان بهمو دیاردکانی و وردگری تو نای حوی تنها جیان ببزوينت. بیوفیلی خوانی اخلاقی کن که برنسیپی کتاب درباره چکو خرابیان هست. چکو همو اوضیا کل خدمتی جیان داره. خرابش اوی کل خدمتی مرد داره. چکو بریتیال رزلنانی جیانو همو اوضیان کل خدمتی جیانو گش صندنو کر ویدن. بالام خرابا همو اوضیان دغیر توکد ابنهای اوی جیان خف و خاموش بکن. یعن آلو زیبکاتو با کمالک پرچده بشیبکات. خوشی لای او چاکه او دلتانگیونا و خرابه او. خوشیاری لای کسیکی نکروفیلی او خوشیاری نیا که خوی لکاری خرابه ده پاریزه تو کاری چاکده دکات. هر لای لی او منی بالا هر وک فروید کردو. و وکو دری کی تونت لسرسادیت دنند رید. بلام خوشیاری لای کسیاتی بیوفیلی، وایل دکات که و خوشی برات. هر وحا چلاکی اخلاقی لای اوجه خط لسر دکات کجیان که جیان دوستا. لبر امهویا کسانی بیوفیلی فیلی هیچ هست بپشیمانی و خوطاوان بر کردن نکن که امانش شوی کی ترن بو اوی رقد لخود ببیتاو دلتن بید او یک سر برو جیان هنگاو دنی دیوید کاری چاکب کد. لی سی پونزاش اخلاق نمونی کی بالاب او طلعت چې لنه خو دی خویداش ته کې خراب نیبال کو بشه بلم ازر چشتن لنه خو دی خویدا خراب دواتر طلعت للای مروفي آزاد زورکم بیل مرګ د کاتوا حکمت او ترمانان لجیان نک لمرک جیان دوستي له پښتموشه وازمیتو د فلسفیکانو هموټ شم کجورا جورکانی فلسفه خویانلم هزره سی پونزاده ده بین نوه. همو امانه گزارشد لودکن که پرنسیپی مروه وی که عقل اویه که جیان دسته. دلتنگی خرابه و خوشیش چاکه یه. امان جی مروه لجیان ده اویه که هموشت زیندوکانی خوش بیتو، خوشی لهموشت مردو میکانیکی درقاته و. من لیر ده هولم ده که وینه که رونی هر دومیلی نکروفیلی و بیوفیلی شان بدم. Balam zorkam amdu mayla wa baronil kizda dardaka wan. Chonka nikrofili ron wata aw kasashita. Biofili ronish wata kasiki qadis. Bashi ki zori khalki te kalawekan lahar dukiyan. Balam awi ka geringa laman. Bouni aw mayla la kasikda. Diyara aw kasanay ka mayli nikrofiliyan te da او کسانه ګویا ان هنده هوشيارنين که هست به خوشويستي مرګي ناخيان کن هر بویا دلیان راغتر ده بد بشویګ خلصو کو ده کن کاردانوی کی عقلانی و منطقی ببینن او کسانه شي کومې لې ژوند دوستي له ناخياند زاله مرگ چولی مېږ نزيک تبنواد تو شیشوګه ده بن لبر او زور گرنګا اې متنه هې نکروفیلی لایک بالکو پیوسته بزانی تا چنده او کساش هوشیار او آگاداری امیل نه خیاتی اگر او کس لو باور دابو کله سر زوی یاندجی له حالت ده او له زوی مرکته جی بمشه ویاش او کساج یعنی لدستر دچتو هچ یوه کجاره کتر بوجین و وصف کردنو میلینوکروفلی او بیوفلی رو بروی پرسیارک مندا کاته و اویش اویا آیا ام چمکانه هیچ پیوندیکیان بچمکی فروید در باری غریزی جیان، ایروسو، غریزی مرک هیا، لیرده آسانه ام لکشونبکین. دیاره کاتک فروید لرگای از منگرائیه و ام پیجنیاری باز کرد که هر دو پال نرکا لناو ناخی مروفده بونی هیا. او زیاتر کاری گری جنگی جیهان در کاتک فروید لرگای از منجری و امپشنیاری بسکرت که هردو پلن را که لنانا خیم رود تابونی هست. او زیاتر کاریگری جنگی جهانیه که میپیادیار بود. کتدا هزا پلن را بران کرکانی تدادر کرد. باج او یجارگیری تیاریا کنکه کدش برای زی سکسی و غریزه کنی من دوست ای و هش اوه گیشتا او راستی که خباد کردن بو جیان و خباد کردن بو مرک بیوستن پکوه و قردو کیشیان لناو مدی جیان دا بونیان هیا. لراستی دا دتوانین تبینی غریزه مرک بکنی که تیگ برو در و هنگاو دنینو دجی خلقی ترا یعن که برو و هنگاو دنینو دجی خودی خود رو برو دبیتوا زور جاریش لگل غریزه سیکسی دا تکلاو اما اش برونی للادانی سادی و ما سوشیده بدیده کهیم. لکته بکی که لسالی هزار و بناوی چی لپشت پرانسیب کانی چجور گرت نو سیویتی. فروید لوبا و ردابو که پرانسیبه که ویرسی میراد گری کن هیا <تصفيق> خفتی دو بار اما کرده کاد بو اویجاره کتر بگره توسر حالاتی پیشو، گرانوی جیانی ارگانی بو حالتی اصلی خوی، روید دلید. گر او رازد بیت که دلین لزمنی زور کنده بشوازک که هیچ باورناکید جیان لماده که مردو دروز بوا. بپی او پیش بینیانا که کروان، غریزیک در کوتوا که امنجی او بوا جیان لمردن رزگر بکاتو، جاریکی تر حالتی ارگانی شتکن دروز بکاتوا. لراستی دا دتوانین تیبینی غریزی مرک کاتجګ بیروزر او هنګاو جنین نو د جی خلفترا یان کبرونه او هنګاو دنینو د جی خودي خوتر بروده بيته وا امجبرونی ل لدانې سادیمه سوشیدا پتی دکاين ل پرانبر غریزه مرګ غریزه ژوند درځکویت ل کاتجګدا غریزه مرګ صفات یې جیا کړنو پر توازه کړنی هيا بلم ایروز غریزه ارکی کی نوو تی کلاو کردنو یک گرتنوی کین لبران لنیوان خویان هیا، اویش لرگای شانکان یا نو. بمشه ویا، جیانی تاکیگ دبیتا گورپانیکی گوره بو شری امدو غریزه یا. للایکا و همو کاتیگ ایروز دیوید همو ماده ارگانیکان یکن لپروسسی یک گرتنوی کویان بکاتا و. بلام غریزه مرک، همو کاتیگ بپیچانی هولکانی ایروز کرده کات. Thank you.